یادگار زریران ایران گیتای ایرانی این بحث مربوط به یادگار زریران یکی از سوگنامه های ایرانی و بازمانده ارزشمندی از میراث پارتیس یک رساله حماسی مذهبی که در اصل به زبان پهلوی اشکانی بوده ولی صورت کنونی اون به خط و زبان پهلوی یعنی زبان پارسی میانه زبان پارسی میانه واسطه مستقیم میان پارسی باستان و پارسی امروزی است در واژه زریران الف و نون، نشانه نسبت است یعنی یادگار مربوط به زریر یادگار زریران به گیتا گیتای ایرانی است. بهگواد گیتا مهمترین بخش ماهاباراتا سروده حماسی از سده پنجم پیش از میلاد است. که از دو کلمه بهگوان به معنی خداوند و گیتا به معنی سرور و نقمه تشکیل شده است. یادگار زریران در عصر اثری نمایشی بوده. که به وسیله خنیاگرانی که در دوره پارتی داستانهای گذشته را برای مردم روایت می و به آنها گوسانها می به اجرا درآمده است حوالی سال 500 میلادی نوشته شده و قدیمی ترین داستان پهلوانی به زبانهای ایرانی است شامل 114 بند اصلی، 7 بند پایان نوشت و 3000 واجه پهلویس موضوع یادگار زریران، بیان دلاوری ایرانیان و معتقدان دین نوع زرتشتی در برابر خیونهاس خیونان با مسامحه تورانیان یادگار زر ایران در سال 1890 میلادی توسط ویلهم لودیک گایگر ترجمه شده و تئودور نولت که خاورشناس آلمانی در مطالعات ایرانی خود از آن یاد کرده است شاعر ارجمند ایران ملک و بهار هم اون را از پهلوی به فارسی ترجمه کرده که خرداد سال 1314 در مجله تعلیم و تربیت سال پنجم شماره 3 صفحه 113 تا 120 چاپ شده است من لینک کار ملکوشوای بهار را در مورد یادگار زری ایران در مقاله مربوط به همین بس در سایت خودم گذاشتم گوش تا او این را میپذیرد از میان پادشاهان قدیم نام گشتاسب بیشتر از همه در ادبیات پارسی میانه آمده است در گاتاها یعنی سروره هایی که از دیربا سخنان زرتشت دانسته شده چهار بار از گشتاسب یاد شده است گشتاسب در زمان زرتشت فرمانروای بلخ بود زرتشت مردم را به راستی و پاکی فرا می خوند، گشتاسب هم آین او را پذیرفت و به یاری و پشتیبانیش برخاست. در پیامد این اوزا پادشاه خیونها ارجاسب برا شفت و دو نفر را به دربار گشتاسب فرستاد که اگر ایرانیان این دین را رها نکنند باید برای جنگ آماده باشند. گشتاسب از شنیدن این پیام در خود فرو رفت و برادرش زریر پاسخ و نامه را چنین داد ما این دین پاک را نهلیم و با شما همکیش نشویم گشتاسب از وزیر خود جاماسب خواست که پیامد جنگ را پیش بینی کند جاماسب شاه را از کشته شدن زریر آگاه ساخت اما در نهایت مقابله با خیونها و نبرد با آنان را توصیه کرد. زریر با ارجاس پارچای خیونها قرار جنگ گذاشت و فرماندهی سپاه ایران را به دست گرفت. نبرد آغاز شد و در گیرودار جنگ زریر و چند تن از نزدیکان گشتاس به خاک و خون قلتیدند اسفندیار پسر گشتاس بستور پسر زریر و گرامی پسر جاماسب از پا ننشستند و آخر سر سپاه خیوانان خیوانها شکست سختی خوردن و تنها ارجاسب شاه خیوانان زنده ماند. که اسفندیار به علامت سر شکستگی او را بر خر و به محل خیش فرستاد تا برود و برای دیگر خیوانان تعریف کند که در رزم گشت آفسبان چه دیده است زریر عزیزترین شهید این منظومه است. زریر پهلوانی دلیر بود. در اوستا و یشت‌ها سرودهای پنجم و سیزدهم از او به نیکی یاد شده است. با اینکه جاماس پیشمنی کرد که در این نبرد کشته خواهد شد، وی در همه جا گوی سبقت را از دیگران ربود. زریر عزیزترین شهید این منظومه است. و زیباترین ترین به او اختصاص دارد فردوسی داستان این نبرد را به تصویر کشیده است کنون اندر آمد میان زریر چو گرگ دژاگاه و شیر دلیر به لشگرگه دشمن اندر فتاد چو اندر گیا آتش و تیز باد چو ارجاسب دید چنان خیره شد که روز سپیدش شب تیره شد ارجاس به سپاهش رو میکند و میپرسد چه کسی داوطلب جنگ با ذریر است پهلوان تورانی سپاه ارجاس بیدرفش جادو داوطلب می شود و هموس که به زریر تیر میزند و او را از پا در میآورد چو شد جادوی زشت ناباکدار سوی اون خردمند گرد سوار بینداخ جوبین زهرابدار ز پنهان بر ون شاهزاده سوار ز باره در افتاد پس شهریار دریغ و نکو شاهزاده سوار فرود آمدون بیدرفش پلید صلیحش همه پاک بیرون کشید سپاهش همه بانگ برداشتند همین نعره از عبر بگذاشتن گشتاسب که صحنه را نظاره میکرد دیگر زریر را ندید چون به خاک افتاده بود چون گشتاسب از کوه سر بنگرید مرور را بدون رزمگه بر ندید به دینندرون بور شاه جهان که آمد یکی خون زدیده زد چکان جهان پهلوان اون ذریر سوار، سواران ترکان بکشتند زار. ذریر که بر خاک میافتد فرزندش بستور بر بالای پیکر به خاک و خون پدر حاضر می شود. این صحنه در عین زیبایی بسیار قمنگیز است. علای درخت تناور، ای پدر! جان بر تو را چه کس برگرفت مو و ریش تابدار تو را بادها آشفتند پاکیز تن تو را اسوان با پای لگد مال کردند و تو را خاک بر گریبان نشسته است اکنون چه کنم؟ چه اگر از اسب بنشینم و سر تو پدر در کنار گیرم و تو را خاک از گریبان بگیرم پس به آسانی باز بر اصم نشستن نتوانم بیدرفت جادو زریر را کشته بود پس از این واقعه کسی آمادگی برای نبرد تن به تن با او را در خود نمیدید مگر پسر خورسال زریر همون بستور که در نبرد با بیدرفت جادو وی را به خاکف یادگار زریران به گوت گیتای ایرانی است در پایان به دو نکته دیگر اشاره بکنم یکی اینکه که ردپای سوگنامه داستان زریران را در کتاب‌های مقتل هم می‌بینیم کتاب‌های مقتل به بازگویی داستان کربلا می‌پردازند در یادگار زریران پسر جاماسب گرامی کرد یعنی گرامی کردار در حین نبرد دستهایش قطع می‌شود و او درفش یعنی پرچم را به دندان می‌گیرد که به اختیار دستهای قطع شده ابوالفضل عب عباس و گرفتن مشک آب توسط او با دندانش تداعی می شود رفتار شمر در داستان کربلا بیشباهت به بیدرفش جادو در یادگار زریران نیست همو که به زریر تیر میزند و او را برخاک خاک می‌افکند سرگذشت غمانگیز زریر در حماسه یادگار زریران همچنین سنت نمایش واقعی مسایب میترا و برگزاری آین سیاوشان یا مراسم ازاداری برای اسمردیس بردیای دروغین و چبسا راستین به دست داریوش هخامنشی همه اینها در شکل دادن و اجرای نمایش های آینی نقش داشته است. نکته دومی که باید اشاره کنم این است که داستان یادگار زریران مبنای سرودن شاهنامه دقیقی قرار گرفت گرشاست نامه همچنین حکیم ابوالقاسم فردوسی و سعالبی در شاهنامه های خودشون از یادگار زریران تاثیر پذیرفتند این توضیح رو هم بدهم که روایت فردوسی از گرشاس بیا زریر با متن داستان یادگار زریران تفاوتهایی دارد